بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين واهله وصحبه اجمعين اما بعد حديثا بل في الجسم و ما شاید یکی از بهترین چیز و مهمترین چیزی که لمس کردیم از حدیث قبل بحثیم بود که طالب علم برای خدا فار بکنه برای خدا بکنه باور بکنید یعنی ما را از جمعه اشخاصی که الله قبول شدیم لازم زمن تانرگاه مدینه یک روز توزه نمون نبود که بکنیم برای اینکه که بریم تعبت بدیم یا برای که بریم کسی را هدایت بدیم هدف این بود که ما خودمون اصلاح بکنیم. کنیم این بود که ما یه چیزی یاد بگیریم تا اینکه در عبادت با بسیرت باشیم تا اینکه که زمن این آیه بشیم قل ها دهی سبیلی ازعو الالله علا وظیره دعوت من بسیر خدا باشه با بسیرت با بینش با دید باز با دلیل و برمان و مدرک فردا خدا من روزرقی اگر کردن من رو گرفت بگیم که این دلیل و این مدرک من بود این کاره هدف اینه طالب علم قصدش این باشه که به خدا نزدیک بشه قصدش این باشه که بنده مطیع خدا و شناس بشه هدف هدف رو مشخص بکنه از طلب علمش قصدش رو مشخص بکنه برای خودش چرا علم رو یاد میگره؟ چرا میخواد علم شرعی رو بخون تحمل کردن اثر سر کلاس نشستم مدرگی هم رشد نیست فردا هم نه برایشون پوستی و مقامی و, و منصبی دیدن برای خدا دید. شاء الله که خاتمش هم برای خدا باشین سختی ها که تحمل میکنید کنید دوستانی که از راه دورم هم میان دوستایی سای دو که الان ما داریم خصوصا در ریاض شاید حالا اونجا فراغتشون سبب بشه که 600 کیلومتر هم به هم باسته طلبه حالا اینم بذاریم از راه دور اومدنم بذاریم پای حساب هجرت در خدا برای طلب علم اولین که هجرت کرده بود در راه طلب علم کی بود؟ موسی علیه السلام خدا منو ایچ دستور میده که بره به طرف خیض در راه خدا قدم داره برای طلب علم ما که از موسی بهتر نیست حالا موسی که هیچ اشخاصی از اصحاب براب نعازه بغیره مسیر شام را تیه کردن از مدینه تا شام مسیر دو سه هزار کلیمه را تیه کردن خاطر یک حالی تا مثل هم رفتن بخاری مسلم در رزر بگیریم طلب علم و نزدیک شدن به خداوند با علم صحیح اجر و فضیلتش دست خداست و بینهایت کافیست کلا در ضمن طلب علم احادیزیک و وجه فرشتگان بالهاشون رو فرش نخونن. قرآن دیگه اون استغفار میکنن میکنن کافیه در طلب که راه به راه به سوی بنده میشه علم الله له و هموار میشه باز میشه خیلی مهم که این نیت خدا داره میاد که یک مذاکره باشه از حادث رسول الله از آیات قرآن من بخودن از ذکر بشم خدا رو بهتر بشناسم حق خدا رو بهتر بشناسم الان وقتمون نه حالیت که ما داره می حق خداوند ما حق خدا رو چطور و بهتر بشناسم و چطور به خداوند نزدیک بشیم خب قال المؤلف رحمه الله النبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع إذا أحدث حتى يتوضع أبو هرير رضي الله عنه جزء حفاظ أحاديث النبي صلى, صلى الله عليه وسلم إصدار إسم الشيخ تلاقه قفتشت إسم الشيخ عبد الرحمن قفتشت عبد الله بن سيتقول سيتا قولتك شتباليك ما چیزی که ذکر زر اسمش عبدالله یا عبدالرحمن ابن سخت ادوزی میاد در مسجد می نشینه گرستگی هم می کشه تا اینکه نزدیک رسول الله باشه یه چیزی یاد بگیره و بر بگرده به قومش و بونها یاد بده پس ابو حریر رضی الله عنه جزه حفاظ حالی کسی که صرفاً میاد دفت رسول الله صلی الله علیه وسلم مینیشینه به خاطر طلب این گروس نگیر و میکشه تحمل میکنه این قصر رو یادتون باشه این خیلی مهمه برای کار رو باره ابو حراره رضی, رضی, رضی الله عنه رسول الله میخوام ازدواج بکنم ولی نمیتونم شهبتم هم زیاده کار بکنم روزه بگیر روزه بگیر که روزه یک وقایت و یک خوشیشی هست برای بنده تا اینکه در راه حرام در کار حرام نیفت خب ابو حراره رضی الله،, رضی الله عنه این کار را تکرار میکنه میاد روزه میگیره که شهوتش کم بشه بشه. در رسول آلوحی رسول شهوت هم بیشتر شد هم تر بشه اززواج نمیتونه بکنه چی پول نداره سنگ هم به شکمش بسته در مسجد هم قابیده جای اون مکانی هم نداره چیکار کار طالبه هیچ جا هم نداره بیاد افرار بکنه میکنه به رسولات اززارم چیکار بکنم؟ چیکار و چی کار نکنه و سنان نراحت میشه که سب نداره یاد داری دو دون حدیثی که وقتی که اومدن در مکه شکایت کردن فصلان نراحت میگه از آمده است که که کاری را تمام خیلی تعجب میکنم که رستگان کسی که میاد و بیداد میکنه بگه از آمده است کسی و میشود نسش میکند. که از یک بر میگردد. از 3 شب نمیگردد. میکردم و می شکایت میکنه که من شغل شغل ميكاد. دارم، نمیتونم تحمل بکنم. روزم گرفتم، چیکار بکنم. رسول الله نراحت میشه. میگن از فخص. از خش میگن از آدم میگن دیگه برو میگن مردی تازه بین ببر خیاطو خایه ها رو آبش بکن دیگه تاموشت می‌ره کوتاه هست دیگه شهود دست نداره چی میخواد بگه رسول میگه باید تحمل بکنی وظیفه باید تحمل بکنی آیا راحتی بهش داشت جونه زنم نداره کنی نداره چی کار بکنه کارهای سریع و مختصر نه انجام بده این میشه و سازنده میکنه خب این شهر با این وضعیتش با این همه سختی ها میاد در نزد رسول الله می نشینه برای رسول الله شفقت میکنه به حالش و دعا میکنه در حقش که خداوند بهش حفظ بیده که دیگر حدیث از رسول الله صلی الله علیه وسلم و فراموش نکنه خب این عبد الرحمن بن صاحب رسول الله صلی الله علیه و سلم راوی بیشترین احادیث از رسول الله صلی الله علیه و که رسول الله صلی الله علیه و فرمودند لا يقبل الله صلاه, صلاة احدكم خداوند قبول نمی کند نماز یکی از شما اگر دوچار حدثی شد تا اینکه وضو بگیرد الا حدثی و مفهوم ما دلد. قبول چیه؟ خواهد اومد در این لفظ حدیث اومده لا یقبل خداوند قبول نمی کن. نماز کسی که دوچار حد شده حالا الان نواقض یا نواقض غسل الان خواهد اومد شرخ بیشترش تا اینکه که وضو بگیره میخواد اینو بگیر نماز بدون وضو قبول میشه قبول نمیشه حالا این قبول نشدن بمنای عدم صحت یا نقصان اجر اجرش کمتر یا اینکه مطلقاً قابل قبول نیست ما در نصوص شرعی دارید مثلا در روایاتی که داریم در بحث الفرق بین صحت و قبول اثر ابن عبدالله بن عمر رضی الله عنه در که میگه لا یتقبل الله لی صلاة واحده صلاة واحده احب الی من جميع دنیا خدا من یک نماز از من قبول بکنه بهتر از تمامی دنیا چون لأن الله تعالى يقول إنما يتفبل الله من المتقين خدا از المتقين قبول بکنه بحث قبولی برمیگه ده به سباب به عجر و پاداش آیا ابن عمر از صحات نمازش میترسیده که نمازش درست نباشه صحیح نباشه یا بحث اینه که خداوند ازش قبول نکنه نماز درست بخون ازش قبول نکنه از کدومی ترسه؟ از دومی خداوند به صحت نمازت نگاه نمی کنه که نماز درسته صلو کمقایی توانه و صلی وظیفته که مثل رسولان نماز بخونه لیکن صحیح باشه اخلاص نداشته باشی به درد اخلاص داشته باشی صحیح هم نباشه بازم به درد نمی خونه. حالا این به درد نفردنش عدم طبولش که دلالت بر نفتان عجر و پاداش داره ما ببینیم مثلا کسی که مشروب بخور در حدیث داریم کسی که مشروب خود چه روز نماز درست نیست حالا این درستی از شارب خمس یا کسی که پیش کاهن میره،, میره آیا نادرست بودن به معمی صحیح نبودن مطلقتا خود روی قبول نکن دیگه نماز نخونه یا این که اگر نماز بخنه پاداش فقط یک چیز روز به خاطر تنبیه قبول نمیشه نمازش یعنی پا عجل پاداش بشه داده نمیشه شک درش نیست کسی که در زمین مرسوب شده خصد شده یا،, یا کسی که مشروب خورده یا پیش ساخر و کاهن رفته در اون چه روزش شخص شعر به خمر یا کسی که پیش کاهن رفته چه روزش نماز باید بکنه فرزعین باید بکنه لیکن پاداشی نداره پس عدم قبول در شر به دو معنا جاهایی به معنای عدم سحر و جاهایی به معنای عدم قبولی که برمیگذر به عدم وجود اجر و قادر در مقابل اون عملش به خاطر تنبیهی که خداوند میخواد به اون بکنه حالا در بحث عدم قبول، به عدم سحر الان کسی که بیاد عضوی نداشته باشه بلا هم بشه بیاد دورو کرد نماز بکنه بدون وزور نمازش داشته دورو نمازش درست نیست صحیح نیست نه اینکه که عجر و خادر شده. اصلا کلم از بیخ نمازش درست نیست همچنین از جمعه حادثی که ما داریم الان این درباره برای نماز در الان این که از شروطش الان کسی دختری بیاد بدون حجاب نماز بکنه نمازش درسته؟ درست نیست اولتش مکشوف باشه پاش یا موهاش بیرون باشه درست نیست چرا لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار نماز حائض یعنی که بالغ شده دختری که بالغ شده دختری که بالغ شده خداوند نمازش اصلا قبول نمیکنه نمازش درست نیست پس عدم ثبوت در این دو تا حدیثی که لا داشتیم در بحث ستر اورد و در بحث وضوع دو تا از شروط صحت نمازه شروط صحت نماز پس دو تا حدیث عامن در این که اگر کسی دوچار چینک کاری بشه خودمانده در چون قبول نمی کن. خب الان حدث چیه؟ دوستمون سوال کردن حدث چیه؟ حدث ابو حرقه در دنباره روایه از سؤال میکنن حدث یعنی چی؟ میگوید فرصا اون او برات بادی که از چکم بیرون بره بادی که از چکم بیرون بره بهش میگه چی؟ حدث حالا این بادی که چکم بیرون بره جز چیه؟ جزه نماخذ یا آغسل جوز نماغذ بزرگ. پس حدث میشه هر چیزی که بزرگ را باطل بکنه. خب اگر یه چیز دارم غسل را باطل کرد. جنوب شد شخص. نزدیکی که از با خانمش. آیا این شخص محتد هست یا نه؟ دوچار حدث شده یا نه؟ بله دوچار حدث اکبر شده. دوچار حدث اکبر شده. خب الان یک شخصی غسلش انجام داده دوچار حدث نشده بوزه هم نگرفته قبل از غسل تهارت اکبارش انجام داده آیا این شخص دیگه نیاز هست که دوباره بزرگ بگیره بیاد به مسجد نماز بکنه یا همون غسلش بوزه رو دربر میگیره روز جمعه هست اومده مسجد اومده رفته توی حموم غصرشو انجام بده وقتی زیر دوش بینیت از غصر جمعه غصرشو انجام داده حالا این شخصی که غصر جمعهشو انجام داده درسته که بیاد در نماز و جمعه بخونه با همون غصر یا خب نیت وزو نداشته یعنی وزو نداره درسته؟ درست نیست؟ چرا؟ غصر همون وزو باید کاملتر از وزو تحارت اکبره گفتیم تحارت اکبره اکبر از غرا دربار میگیره دربار میگیره بخاطر همینی که علمان میگن گرفتن بوجود بعد از غصر اون غصر شرعی به در غصر انجام دادی غصر تو انجام دادی بیایی بعد از غصر دوباره بوجود بگیر به در تنجام دادی یه غصر همون غصر بوجود بگذار چه پرام چه شر لازمی الان گرفتن بوجود قبل از غصر واجبی یا سنته حالا من وزو نگردم قبل از غسل غصر. غسلم انجام دادم وزو دارم ندارم خود به خود وزو دارم چرا؟ چون تحارت اکبر رو انجام داد دیگه نیازی نیست که دیگه بیام تحارت از هر روز دوباره انجام بدم دوباره وزو بگیرم هرچن که آب تو دهن لا جز لا اگر بخیم جز شروط یا وجوب واجبات وزو مزمزه و سنشاقه پس غسلم باید مزمزه و سن شاخت پیش باشه خب اینم بحث حده حالا در بحث حده از تمافت وضو چیزهای از اختلافی و چیزهایی از اتفاق درشه بحثش باد رفتن از افتن باد از شکم یا اتران یا قضای حاجت کردن اتفاق درش میونه اختلافات اختلاف در در رفتن به عذر شردا در پی رفتن به زن خوردن یک دست شوتور اینا مثالی است که چی؟ درش اختلافه. الله فقط و تعالی یک مسئله من شرحش ندادم قول ابن عمر لا يتقبل الله مني صلاه واحده. این شرحش ندادم. در اینجا شرحش دادم درسته. شرحش کامل دادم درسته. چیز اشکالی كده متصور اثر عبد الله بن عمر باحتیاج بهلام عمر میخواد که قبولی خیلی مهمه قبولی صحیح در خودش که خداوند جا جا قبول نکنه میگه یک از من قبول بکنه خیلی واسم ارزش چون خداوند از متقین قبول به من قبول کرده الله لي واحدة. لأن يتقبل الله لا يتقبل الله لي حبه اییه من جمعه سنيان. لان الله تعالى يقول، اين يتقبل الله، اين يتقبل الله من المستفيق، من المستفيق. گفته شده در ضمن بزو، اين كه بزو برای هر نماز قبل از فتح مکه واجب بوده برای نماز تا اینکه عمر رضی الله عنه رسول الله را میبینند در مکه فتح مکه میبینند که برای نماز وضو میگیرد دوباره وضو میگیرد سآل می کنند که داری دوباره وضو میگیری؟ بعد رسول الله بیان می که سنته که برای نماز اگر وضو داشته باشی اعاده بکنی، اعاده بکنید به خاطر همی وضوع گرفتن برای عاده وضوع برای هر نماز کسی که دوچاره حدرت نشده جزو چی؟ سنت هاست حالا کلمه خود وضوع رسول الله فهمده حت اذا احدث حتی یتوقع خود یکی وضوع داری وضو یکی وضوع داری وضو با داد، با زم او با اوی روی باغ باب فطر و باب با وضو اصل باب سلامی و از وضاء از نورانی و یا از پاکی میاد پاکی و می دی خود اصل کلمه باب و با ذمه وضو فعل وضوع. دادن فعل وضو امشب فعل الوضو بهش میگن وضو و با فتح الوضو ذات خودش برای میاد در حادث بعدی آبیست که ما با اون دست نماز میگیریم می میگیریم اون آبو بهش میگن و آبی که اتفاده میکنیم در وزو بهش میگن وضو در حادث میاد فا تو به بي انا این فیه الوضو که من مثلا با قاسی از آب مده وضو به معنی آب خب یک شخصی الان حکم یک شخصی که میاد وضو ندارد عذری هم نداره میاد نماز بیخونه حکم نمازش یه نمازش باسله بیاد عمدن قستن بزن وضو نماز در نزد جنگورد این شخص اما درست نیست. بگن کافر نیست. و در نظر نکته کافر. چون مسخره کرده بدین. چون مسخره کرده بدین کافر. یک شخصی سوال بعدی. حالا ما این مسائل رو در زنده این حدیث بریم که نفر مسائل فقط هم در بر بگیره. یک شخصی عفت داشته باشه وزو نگریم تیامون بکنیم آیا نمازش درست یا نه نمازش درست حالا یک شب عوض داشته باشی تیامون بکنیم نمازه درست یا درست دیگه؟ درست حد دقیق عنام درست در چون اون چیزی که در حد توانش بوده انجام داده لیکن در این جامداری لا یقبلو لا یقبل الله سرعت احد اکم از احد از حد سیاسباد را در حدیث کف وزو نگفی اما چطور شما میگید کس که از دار شوشت ایمون بگیره نمازه درست اعاده برش نیست سنیدی که بعد ها میدن که کسانی که دستشو میشکن یا پاشون بعد باید بیان قضا بکنن سنیدی خصوصا در این که وقتی که دستشو فانسما میکنن داد این فتاد درسته؟ خب، حالا این یک مثال، یک مثال دیگه که هست که در مدرسه مونشافی که هست، خب که داره یه مگر یک شخصی دستش شکسته هست، پیش پیش استاد استادم می‌شه میری که دستش رو ببنده. میگه آج احمد دستم و به من دستشو میبنده بوزی نگرفته. دستشو برد بوزی نگرفته این برد وقت الان چه کار بکنه؟ بیت روز باید دستشو برده باشه همین همینطوری تو اون گرش تو اون آتل بشینه. چیکار باید بکنه؟ دستش هم زیر آتل. میگن که این شب نمازش درست نیست دی که نماز باید بخونه و بعد از اون باز تمامی او نمی‌ورده شاید او کلمی می‌گویم نه کی گفته که شرط که وقتی که آتل بسته میشه باید وژو بگیره بعد آتل ببنده بعد گچ بودنده کی گفت؟ و دوم من اینکه تیامون بدله آنها کسی ندارم مادر مذهب داریم که تیامون گفت میگه که یه شخصی مثلا درست شکست وژو میگیره مس هم می‌کند روی آنکه گچ برش داده تیامونم می‌گیره خب میشه میگه دو تا تهرات با هم جمع کرد. میگه تیمون بدل نیست، جایگزینی نیست اگر جایگوزی رو شرا، هر دوستا با هم جمع می کنیم این رو بدونیم که در شهر، در احادی از تیمون به نام بوزو یاد شده است از تیمون بوزو یاد شده است. از تیمون بوزو یاد شده، تیمون بوزو السلام يا ثرمايا، الطيب وضوء المسلم، أو ضوء المسلم، الصعيد الطيب. أو أجد فيهم بوزوس، شرط فيهم كباخا كير، كبا، أبي جنبش. إيه الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد ما عشر سنين، لم يجد ما عشر سنين لم يجد ما عشر سنين هر که آب نبینه برای ده سال آدیسان آب نبینه آب نیست. آب بیاد ده سال دیگه و آخر آمرش آم کرد و نکرد بیاد تمامی اون نمازش عاده بکنه خیر. این حدیثم در نظر امام ترمیزی و ابن و حاکمه این مسئله هم که هست اجموع در نظر علما این که اعاده وزوی برای هر نماز مستحبه است کسی که وزوی داره اعاده, اعاده وزویش در نظر تمامی ع مستحبه خب الان یک شخصی نه میتونه تیموم بکنه و نمیتونه وضو بگیره نمازش چیه؟ در نزد جمهور عیمه کسی که فاقد و باشه هم وضو و هم تیموم از در نزد جمهور نمازش صحیحه لیکن بعضی ها خسن شافی ها میگن باید چیکار بکنه؟ اعاده بکنه بعضی ها دیگه مثل هم بلی ها میگن اعاده برشدید چرا اعاده برشدید؟ چون لا يتلف الله نفس، الا وسعه در بودش هم انجام داده دا. و در حدیث دیگه دارید رسولا میفرد اذا امردکم به شیئن فعتو منه ما بعد این در حد سطاعت انجام داده دا. فکر چرا دیگه مکلفه که دوباره بیاد انجام بده بس صحیح اینه که چی؟ کسی که فاخد از این باشه نمازش صحیحه و اعاده هم برش نید مذهب مالک بر اینه که تهارت شرط واجب شدن نمازه تهارت حالا کسی که نمیتونه وضو بگیره و کسی که نمیتونه تیمم بکنه این شخص نمازش هم برش واجب نیست لازم نیست که نماز بکنه دازم نیست که نماز بکنه. آیا الان قضا برش حد یا نه؟ قضا هم برش نیست. شبه واجب نبوده برش. واجب نبوده. تا وضوی نباشه، تا تیامون نباشه، اسباب تیامون نباشه، نماز بشرف واجب نیست. وقتی که واجب نمداره ده سال ها بی سال هم بگو داره. تو بیمارستان افتاده، نمی تونه نتیامون بگیره دستپاشم فلج اینم اینم گفت رد به دلیل الله جل سانو لا الله نفسا الا وسعها رسول الله اذا اماتكم بشیئا بشی ما یک شخصی داریم دست شکسته یا پا شکسته مشقت برش نیست که بره وضو بگیره اگر مشقت نیست وضو رو میگیره اون قسمتی که بسته شده با آتر یا با گرد بسته شده مست میکنه الان چه پا چه دستش. به دلیل اثر دلاب نعباسته دلاب نعباست که دست شکسته بود بعد روی دستش مست کردن اما اگر سخته دو دستش بسته شده نمیتونه برامش یا پاهاش شکسته شده نمیتونه راه بره و وزو بگیره. ایجا با چیکار بکنم؟ تیامو. تیامو. اگه کسی که تیامو میکنه لازمه که وزو بگیره خیر یا تیامو میاد وزو. هر که در حد توانته هرچی که در حد توان ما هست اون انجام میدیم باز داره که که ما از عمل تیامو وزو با هم نشه استانه‌كنن به آي الله مصطفى. نگذشت الان وقتی که خداوند اين کينگ میفرماین فتح الله استحقای خدا بشه بیلی در حد توان وقتی یک مسئله در حد توان و در جای دیگه اون کار یعنی مثلا الان وقت وضو بحث, بحث تیمم وقتی که خدا هم میاد میگه یا وضوع بگیرید یا اینکه در سفری آب نداری تیمون بگیرید آبی آیا اینها در بحث تقوای خدا پیشه گرفتن در حد طاقت اینو میبینن اگر اون آب کمی هم دارن بعد از اون کم آب کم استفاده بکنن حتی اگر مثلا چند قطری باشه که به قسمت از صورتشون برازه. یا به قسمتی از دستشون آیا این چینینه یا اینکه نه خداون بدل امرد از گوه بدل اگر نتونستی فی این لم تستطیعو خب فکده و کده آخرش گفت اگر نتونستید پس تیمون بگیرید اونم در حال حضرتون اگر نتونستید اگر نتونستید برمیگرده چی؟ فساق الله و اتفاعات در حد توانش انجام داده چون نتونسته و زود گیرد پس بدلش انجام شاپ او با همت زنم خوش چکات غلط باشه خب هی من بقیه عزاداری او همین وضو رو میگیره اون کار روش اثر الله چه باشه اگر اگر دیگه دیگه که اگر اگر که دیگه لازم نیست که تیممو بگیره چون اصلو انجام داده، چون اصل انجام داده دیگه نیازی به تیمم نداره. علی این بحث وضو بگیره که عموم بگیره. تا ها وضو بگیره. اگر نمیتونه وضو بشه نمیتونه سخت تحت مصافته براش تیمم تنها میگیره. و اگر میتونه که برداست پاشو بشوره، برد اون قسمت مثل بکنه همین, همین کارو که انجام میده و نیازی به تیمم نیست. بله، بل. بل. بله. و دلیل اینکه رسول الله علیه و سلام، رو داستانش حسین در درجه‌ای تا وضو پیدا دیگر میشه یک شخصی که نمیتونه وضو بگیره، میتونه مثلا فرموششون که که محرم میشه بیاد دست پاشو بشوره یا صورتشو بشوره و برایش وضوع بده و میتونیم استدلال بکنیم حالا هر چند که قیاس نیست یا یک وجه قیاسی شاید داشته باشه رسول الله وقتی که سهر شدن نمیتونستن قرآن بکنن روی خودشون آیشه میگوین که میبید که من روی دست رسول الله میخوندم و به بدنش محض میکن رجع برکت ایمان خاطر برکت دست رسول الله در طوانش نبود آیشه موند روزت رسولان میخون و دست رسولان به بدنش میکشی بس میشه از یک شخصی دیگری در یک عبادتی استفاده کرد در یک عبادت روحیه رو کردن و خوندن روی جه عبادت یا یعنی؟ عبادت در این عبادت آیشه اومد چون رسول نمیده از اول تلاوت بکنن و خوندن روزت رسولان و رسولان رو روحیه کردن پس در بزن همچینی ایک عبادت میشه از یک کسی دیگر کمک گرفت آبو به صورتش بکشه یا دستش بکشه میمونه در جاهای دیگری حالا این در بحث استفاعت میاد خیلی ها اشتباه میکنن مثلا پیرزنی در خونه نشرته نمیتونه رکوع اسجود بره یا پیرمردی در مسته نشسته، بعضیا بهش میگن تو اتا دستت بگیر رو اتا سجده بکن یا بالشتی بذار بالشت رو, رو بالش سجده بکن این اشتباه این با افتدلال میکنم به میکنم افتدلال میکنن, میکنن به فرمودی افتد خلالله هم استطاعت رسولا خشبی میشه، نرهد میشه این از استطاعت خارجه الان همیشه انسان هر جایی بیاد خارج از اون چیزی که در حدود محوطه شرعی هست بیاد استفاده بکنه، عطا را بذاره اون چیزی که خدامند ازش نقاسه این خارج شدن از حدود شرعی وقتی که علاوه بر یک شفت رو می بینند که بالش گذاشته داره رو بالش تجزیه می کنه، بالش رو بر می داره. یه خداوند از تو نخواسته که تجزیه رو بالش رو بکنی. خواسته که در حد توان تجزیه بکنی. اگر پسی نماز بخون با ایماع، اینی با اشاره نماز بخون، با اشاره رکوع تو کمتر از دلیل دستکار قرار بده تمام شرحت. این در حد توانه. اما بالش گذاشتن و بالش بونان کردن و اوردان و زیر پیشی گذارش یا نمیدونم آسفا گذاشتن دادن تری پیشی. این مافق طوان یعنی انسان یک کاری رو عبصوده بر خودش مکلف بکنه اگر میتونست که روزمی سجن میکرد یا چه لازمه که دیگه بیاد بالاشت و فلانو این چیزها جلوه پیشنیش بذاره تو این آیه نمیشه همه جا ازش استفاده کرد. که در, در بحث خودش هم قایم و در بحث نماز انشالله میمونه حدر اگر یک شخصی در حالی که نماز میخونه دوچار حدث کشید. من اومده نماز کندم. الله و خب. یک دفعه دوچار حدث شده. نمازم باطل یانم. نمازم بگه متقف شده. نمازم باطل یانم. در نزد هنفی ها قسطگی داره. اگر در شهود آخره آخره. قسطنه. قسطه. قصد. با درست کمش بیرون رفت خستن این نمازش درست سلام باز دیگه دازه بشتری بگه علیکم علیکه و رحمته باز در تشهده آفند نشسته یک دفعه روش, جرح. روش جرح. رو شد روش شد شرخ همه نشسته نها واقع در رو حالتی رو دو. دوچار شد و مرتقب شد این شفت نمازش درسته اگر خست نداشت یو رو نتونست خودش رو کنترول بکنه کاری درست خودش داره چه کار با کنه میگن که میره و میگیره دوباره بر میگرده حالا ق یا باد سمش بیرون میکنه یا سلام میده مخته ت اختیار داره هر کدوم کاری رو میخوادن بعد فقط باید چکار بکنه الان نمافذ نماز نماز و مرتک یعنی نمازش درسته است یه نداشت یه هو با در بیرون رفت این شخص با چهکار بکنه وسط نماز میره وجودو میرهه دوباره باید نمازش کامل میکنه بعدله خواص سلام میده یا دوباره همو قراره تکرار میکنه. اینه که ابن حزم میاد سخت میگیره و تا اونجویی که میتونه فوش میده بهشو حنفیه ها که نمازتون سلامش بادشکم باشه و فنام باشه و ادرارم از باشه دیگه نمازت خدا میدونه چیه این نمازتون به در درد خوردت نمیخوره حالا چراش می‌ذاریم یک حد علمی میدیم والا ما کاری نداریم بیره هایی که ابن میگه ابن حزم خیلی خوندگان حنفیه خصوصا الا ما کاری اینه داریم ما دلیل شرعیم بیام دلیل شرعی ما حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تحريمها تكبیر و التسليم چیزی که نماز حرام میشه یعنی نماز سبب میشه که خیلی چیزها برای حرام بشه حافظ زدن غذا خوردن نمازش نمازش با تکبیر همه چیز حرام میشه پس واجبه که با تکبیر وارد نماز بشه. در نظر حنیفه ها تکبیر واجبه. و تحلیل ها از تسلیم. حلال شدن چیزها. قضا و آب و فیران چیه؟ سلام دادن. چیزی که ورودش، تکبیرش واجب شد. چرا خروجش واجب نشد؟ سلام دادن. آیا سلام را مقابل نجاسات میداری؟ مقابل نواقض از حضور میگذاریم سلام دادن هیچ وقت و این خلاف فعل را رسول الله مالیس علیه امر نفه و ردن هست چیزی که امر نبوه برش نبوده و امام بخاری هم در کتاب الحیل از جمله خیله ها زکنی کنی کنی های حنفی ها رد و حنفی ها چند تا کتاب داره امام بخاری بر رد حنفی ها یکی آه در ضمن خودش کتاب صحیح جوهای متردد حنافی هم چون حنافی خیلی با زدیت میتونه با حدیث صحیح های هم نوشته مثل کتاب رافعلی کتاب رافعلی دین در مدبل احناف چون حنافی ها در غیر تکبیرات الاحرام رافعلی دین قبول ندارن ایمان بخاری خیلی شدید است در این مسائل از مسائلی که ذکر میکنه ایمان بخاری پای مسئله در ها همین حدیث رو در کتاب الشیع ذکر میکنه حدیث دا یخبر الصلاه لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا چون حدث چیزی که باون حدث با اون نماز قبول نمیشه چطوره که این شخص دو حدث میشه در نماز و نمازش قبوله این مسئله که ما با روش استفهام میذاره برای حنفیه این خلاصیه میشه <تصفح> تو قصیده‌ نماز جنافیو، زن نماز جنافیان شخص میتونه برای وضو نمیاد نماز دوباره کامل بکنه چون نواقضه نماز مو نشده نماز نشد. نماز ناقضینادرفتش. غذای خورد یهو غذای خورد هر کی دستش نماز نمازش باطل نیست. مبتلاتات نمازی نداره. چیزی که مثلا نمازش باطل بشه. تو اینکه عذر داره به خاطر حدث بشه و یه نمازش باطل میشه نمازش باتر شد. کسی مثلا, مثلا من به فرد سر نماز خرفی بزن نمسخنی بگم حمدن قستن یا بیونه کسی آخره باجر شکم شخصی بیدونه. دیگه نمازی نداره دیگه. دوچار حدث شده و خود و من نمازشم هرچه نمازش, نمازش ها؟ که سرسل بوده اما مثلا بول یا همین مرضی که اله کسی نمیتونن ادرارشون رو, رو بیکرن. این مسئله دیگه یک شخصی دوچار سلطه بوله، دست خودش نیست این حکم استحاذه رو داره. حکم زن استحاذه. زن استحاذه، زنی که عادت مافوق عادت ماهیانش در طول ماه یک خونی غیر از خون قاعدگیش میاد. این زن رسمه فیوسیهش میکنن که اونجا را خوب ببندن، من قسمتی که خون میاد، که خون سرایت نکنه به چهوهی تیگه بپیراهنش چون خون حیزن جسر و خون استحاذه کنه. و نمازشو بخونه و برای هر نماز اگر بتونه وضو بگیره و اگر نمیتونه حضور بگیره برای هر نماز حداقلش وضو. ثلاثه قول مهمه تو قیاس بر استحاضه است. شخص نمیتونه رو خودشو بکنه. اون قسمت ثانوی میذاره یا به یه چیزی اسمول کاغذی یه چیزی میذاره که اون نجاست خاطر شرایطی که راهنش نمازشو میکنه. این لایرادیه و رو در همون حالی که حالت لایرادیه و فرقی باتش نمی کنه نماز ده بارم دوباره عاده بکنه این شخص نمازش ادامه میده اما مسائل دیگه بعدی از حکمش بیرون رفت. این شخص نه این شخص باید بره وزور بگیره نمازش, نمازش دوباره عاده بکنه فرق داره بین این مسئله و اون مسئله مسئله یه با درشکم میشه کنترلش کرد و میشه که دوباره نماز کن و کنترلش کرد دیشه هر بار که بخواد نمازشو بخونه هرگاه گاه بیاد بخونه دیگه اون مثلش باز هم رخ بده دست خودش نیست غیر قابل کنترله و غیر قابل دفع هست خب مسلم نه نه هیچ بعد نه شرط شرط که ولاین شرط بودن که برای هر نمازی بودی قبل از نماز. یعنی که از نماز قبل نماز شخص یعنی قبل از نمازش برای فردش. حالان میمونونه که یک مثل که یک سرسه بول خیلی شدیده بس پسیش هست ازیننم نمیسیه برید نمما اینطور به تیم می بخوان حاضر که نماز شو رو به تأخیر تأخیر سروری بنداازه مثلا نماز ظهر شو بنداازه به ساعت مثلا گه خ ساعت سه از آن ظهره نماز ظهر شو بنداازه به ساعت دو پنجاه دقیه یا دو پنج پنج دقیقه نماز ظهر شو بکنه بعد از میگه از که داد ازان از تموم شد نماز عاصلشون میکنه. دو نماز با هم خود جمع جمع شده ولی چی؟ جمع اسوری شد چه سلسل گل باشه و چه بحث استحاضه باشه حق داره که این شخص که این شو این عذری داره یک نماز را جمع اسوری با هم جمع بکنم همین حدیث حدیث استحاضه که رسول الله تعالیٰ علیه وسلم اومد حمنه و گفت که من استحاضه میشم خون شریعه از من میام چه کار بکنم بسه توسیه میکنم ببندر اون قسمت و خودش خودشون انجام بدن، نماز ظهر را به تخیه تا وقت هست، تانا به وقت هست بعد نمازش بخونه، بعد از آن اصداد، نماز عصر فقط دری بله نه خب، دیگه مسئله همین حجید کافی وزو گرفتن برای بر؟ بستگی داره اون شخص یعنی بحث اینه که وزو بگیره وزو بگیره که خیلی این ادرار ازش خارج نشه الان بر فرز ایک زنی تو خونه هست شاید دو دقیقه قبل از وقت وزو شو بگیره بعد از دو که ازان داد و فوری نمازش بخونه اشکال نداره بحث اینه که مدت زیادی بین وزو گرفتنش تا انتهارتش و بحث بین نماز خوندن که اون نجاست تنادت بکنه به پیراهنه هم نشه همه چی که بلکه چیزی که تھوڑی میشن اونایی که سر بل دارن این مشکلات دارن توکل داشته باشن این مشکل وسواسی هم دارن بعضیا شو در چی میشینن و فنا نماز به تخیر میندازن و نمیدونم در بسواخ رو به معنی توکل بحث این موضوع گرفتن و اومدن نماز خوندن و پنبه گذاشتن یا مثلا عبری گذاشتن یا هر چی گذاشتن هدف اینه که وسواس رد بشه شیخ، شما قروبیت، شما کل بیاد نمازشو بخون. چون دیگه ما دیگه نمیتونه انجام بده. این خیلی مسئله مهمیه برای قطع بس و بس و بس. شد دیگه مسئله اینی نیست. سبحان الله و بسنده سبحان الله و بس. واس.